کم نا مزدا موئیت پایوم دداو هیت مادرگواو دیدرشتا ایننگه ان یم توحمات آترسچا مننگ هست جا یایو شیعو تناییش اشم سراشتا اهورا تام موی دانست بام دعی نیای فراوچا که ورترم جا توا پوی سینگ ها یوی هنتی چیت را موی دام اهوم بیش رتون چیج دی ات هوی وهو سراوشو جنتو تو مزدا احمایی یحمائی وشی کهمائی چیت احمایی رعشچه احمایی رعشچه خوار نسچه احمایی تن و دوروتاتم احمایی تن و وزدوره احمایی تن و ورترم احمایی ایشتیم پورش خاطرام احمایی آسنام چیت این تیم احمایی درقام درقو جی تیم احمایی اهوم احوم اشعونام راو چنگ هم ویسپو خاطرم اشم وحوم و استی اوشتاو استی اوشتا احمایی یا و اشتایی و